بله ارز کنم که خود خود شما بخونم <تصفيق> این پیک نامبر که رسید از دیار دوست هر هرز جان زخط مشوار دوست خوش میدهد نشان جمال و جلال و یار تا در طلب شود دل امید بار دوست دید دادمش به مجده و خجلت همی برم از این قلب خیش که کردم نساره بود. شکر خدا که از مدد وقت کارساز بر حسب آرزوست همه کاروباره دوست. سیر سپه و دور قمر را چه اختیار در گردشم بر حسب اختیار دوست گر باد فتنه هر دو را به هم همزند ما و چراغ چشم و راه انتظار دوست کفل الجواهر به منو کفل الجواهر کفل الجواهر ای به من آرای به منو کفل الجواهر ای ناصیم سو می وقت که شد دوست دشمن به دست حافظ اگر دغدغنت چه باک منات خدای را کنیم ام شام قطعاً غزل عرفان است. اول. و با اینکه یه مقداری چیزای مختلف داره شاید به نظر بیاد که این غزل عاشقانه است ولی نیست. عرض کنم که هرز به معنی دعایی است که معمولاً برای حفظ وجود آدم از حوادث و آفات اینا همیشه همراهشون می‌داشتن. چیه دعایی داره به نام هرز جواد شاید اسمش شنیده بشه هرز جواد گفتن است که از امام جواد از حضرت امام محمد تقیید روایت شده و هست و در خواستش نوشتن که اگه بره میونه دریاق تیغ و سنان و نیزه و این حرفا هیچ اثر نمیکنه کنه کسی که هرز جواد بشه خود چیزم خود حافظ هم هرز یمانی داره بس که ما فاطحه و هرز یمانی خاندیم به عرضه بدیم من تو این چیز ببینم که اون کجاست و عرضه هم هرز این است و هرز جان از خط موشبار دوست آورد خط اینجا می‌نین چقدر به استادی به کار رفته برای اینکه خط به معنی مویز که در سپورت تازه جوانان رویده میشه ولی یه معنی خط هم نوشتنه و تمام این ها و دعاها رو می نوشتن دیگه آورد هرز جانز خط مشکبار دوست بعد مسئله بسیار مهم که نشون میده این ارفانی است این بیت دومی که میگه خوش می نشان جمال و جلال یار تا در طلب شود دل امیدوار دوست دل امیدوار دوست نه اینکه که دل دوست امیدواره نه دلی که امیدواره به سال دوسته دل امیدوار دوست دلی که امید دوست رو داره نه که دل دوست امیدوار باشه این یکی دوم اینکه که در عرفان معتقدن و معتقدن که این عالم و هرچه در این عالم هست اولا نموده بود یکی بیشتر نیست اونم حضرت هر. تمام این صفت وجود که در اشخاص هست و در اشیا هست و در همه چی هست این این وجود موقتی از پرتو ذات حق ولی یک بود بیشتر وجود نداره اینا همه نمودن بودن باز یه مدتی هم ما که شنیدیم بعد میگن که عالم کل عالم در یک لحظه و با یک تجلی مثلا فرض کنید که آخونده و متشریعین هم میگن خلقت بعد خلقت نمی در شش روز تمام شد که تو قرآن هم هست و امثال این مسائل یا متکلمین معتقدن که خداوند قادره و خالقه و دونه دونه عشقی را جدا جدا خرف کرد آرفان بر اساس اون حدیث که حتما هم همتون بلدید پوندو گنج زن مخفی کن و احباب قوم تو چند زنما فی جنب فأنحبطت ان و رب فخلقت که لکی و رب من گنجی بودم پنهان و دوست داشتم که شناخته شوم خال رو خال کردم که شناخته شوم نمیگه باز خلق رو خف کردم که منو بشناسم و این رو بهش میگن عرفا بهش میگن تجلی این همه نقش عکس و نقش نگار این که نمود یک فروغ روخ است که در جام افتاد اشاره به تجلید در ازل پرسو و حسنت ز تجلید هم حالا میگن که خوب و بعد زشت و زیباب، نور و ظلمت اینا همه مظاهر صفات خدا صفات خدا دو دست است یکی صفات جمالی است اونا چیزهای هستند که همش مظهر لطف یکی صفات, صفات جلال است صفات جلال مظهر قهر علاوی که عرفا از صفات جمال به روح و چشم و لب و همه حرفا تعبیر میکنند و از صفات جلال به ذون چون زیبا هستو چون خوش میدهد نشان جمال و جلال یار این همون است و همون فهمیدن این که اینا هر چه هست در هر چه هست در عالم و اثر ذات و ناشی از یک تجلی الهی است در ازل قبل از در ازل پرتو حسنت تجلی دامس اون یک تجلی اون چه در عالم پدید آمده و خواهد آمد همه اثر اون یک تجلی ذاته میگه خوش میدهد نشان جمال و جلال یار چرا تا در طلب شود دل امیدوار دوست دلی که تا تا دلی که امیدوار دوسته بتونه در طلب بره فخلقتل خلق لکه او را بان تو کنزن مخفین فا احبق تو هن او رفت و خلق, خلق لکی او رفت برای اینکه شناخته بشن میگه این نش... تمام این نشانه های جمال و جلال برای این است که دل بتونه در طلب راب دل دادمش به مجده و خجلت همی برم این نقد قلب که کردم نسار دوش راجه به نقد یک نیم ساعت میشه صحبت کرد که اصلا کار نقد و اینا من سرمی کنم خیلی به اختصار براتون بگم عرض کنم که این پول و الان سکه و پول که اسکناس هم که الان دارین در حقیقت این قبض رسید مقداری تلاست که همه تون این طلا الان با ماشین و به توسط دولت با ایار رسمی معین با وزن رسمی معین بعد قدیم که نبودشن این چیزی انتشار پول دست صرافه و ارزش پولم هم به تناسب عرضش تلایی بوده یا نغره بوده که درش درگی شد و چیزه می گفت مثلا صرافه می گفت که این ده درصد مثلا 90 یا به قول خودش مثلا 24 و چهار می هرچی به هر حال معیم بود که چقدر تلا داره یا چقدر بار داره موید هم پلان قده بعد این اما شما که میخواستید این پول رو تعبیل بگیریم نمیشناختید که قلب غیر قلب یه آدمی باید بیاد که این آدم بهش میخفتن نقد یا صراف نقد اصلا در لغت به معنی جدا کردن ذر و سیم سرس از ناصری این اصل معنی نقد و پول رو نقد کردم یعنی پولیست که دیگه قابل تحبیل دادن و گرفتن دوگه هیچی ایراده. حالا اون صراف که میمد دونه دونه اینا رو به محک میزن یه دستش میریخیم بر یه دستش میریخیم گفت اینا ایارش درسته اینا درسته, درسته. و اونا که ایارش درست میکشید برای که وزدشم تا این آخرام لای لای زنجیره های پول طلا رو سمون میکشتن که میگفتن این سمون خورده است. بعد بر نمیداشتن ساعت دست کار و این تابلو صومشی ش شاب دیوان است خداوند سات شما رو توده ای کرد. از این قبیل تقلوب می کردن. اینا رو بعد نقد ناقد وقتی بعد چون که نمی تونیم پول بیش این تابلو بیاییم، 100 هزار دیناره بسه. آره 100 هزار دینار چقدر میشه؟ میشه 100 هزار مسکال و برای کی حساب سرانگشی بکنیم؟ 600 چهل میشه یه ماه. این ست کی؟ 600 چهل دینار میشه 6400 دینار میشه ده من و 64000 دینار میشه ده خربار یک خربار صد فکر کنید که 100000 دینار 200000 دینار این اولا وزنش چقده که باید تنه درخت خالی کنم بریزن توش بارشم تخته بکنن تا این بتون دو تنه درخت هم بزن باره یه خاطر که ببریم انبان هزار دینار نزدیک دو منی وزنی شد این قدم حجیش. اینو باید تو کیسه چرمی بریزن برای هر کیسه فارچیکی بریزن تش در میاد تا میان بلند بعد تحویل گرفتن و تحویل دادن این کار دشوار همجور که هرسین باید بکشن باید نگاه کنن بعد چه بکنن بعد اون شخص میاماد به نیابت شما این پول رو نقد میکرد، یعنی قابل تحویل گرفتنه یه حق می‌گرفت، یه درصد، دو درصدی، حق می‌گرفت برای این کاری که انجام ده. و بعد خود این بعد بردنش از این شهر به اون شهر نمیم، ما الان با یه تلفن یه تلگراف یه تلکس یا یه فکس میلیون‌ها نمیم، میلیارد‌ها از این حساب به حساب دیگه منتقل میشه این امکان نداشت که باید سوار با بار قاتل کنستن از اهواز بردارم، ببرم سمرغن. تورا دوز سز بود انواع افسام آفاد بود داشت آفات طبیعی بود غیر طبیعی بود بسیار کار مشکلی بود کم کم معنی مجازی نقد جدا کردن ذرستین سر از ناصره شد جدا کردن سخن سر از ناصره هم اسمش شد نبد و نبد کرد اون وقت قلب یه معنیش که دل. یه منیریرش توله گلاویر یه قلب حافظ با این نقد و این قلب خیلی و این مسئله نقد کردن پول با این تشریفات کارتون عرض کردم خیلی بازی کرد میگه قلب اندوده حافظ برای او خرج نشد قلب اندوده یا حافظ برای او خرج نشد کان معامل به همه عیب نهان بینا بود بارها بارها بارها این مسئله رو اینجا الان میگه که دل رو به مجده به خیلی خوشحالم که این کار کردم برای اینکه نقدی که بود، قلب بود زین نقد قلب خیش خویش حالا شما دلت میخواد بگیر یعنی قلبم که نقد و حاضر بود دادم میتونم بگیر یعنی این قلب ناچیزو بی ارزشم نقد قلب خیش که کردم نصارت دوست شکر خدا که از مدد وقت کارساز بر حسب آرزوست همه کارو بار دوست مطلبی نداره بعد این یکی کاملا نشون میده که باز غزل 100 درصد ارتانی است سیر استپهر و دوگر قمر را چه اختیار درگردشن بر حسب اختیار دوست علاله الخلق و الامر آیه قرآن خلق و امر در دست دوست اینم به نیستم دومی آیه است. اولی حدیث قدسیه. حدیث قدسی حدیثی است که پیغمبر از قول خدا نقل کرده. میگه خداوند اینجور گفت. این میشه حدیث قدسی. برای درکه احادیث خودش قول پیغمبره. خود پیغمبر میگن که روزی اینجور فرمود یا اینجور فرمود یا اینجور حکم کرد یا فرض اینجا این کارو بکنید یا فرض اونجا اون کارو بکنید. آن هم که وحی خودشون میفرمودن وقتی که نازل می‌شد میفرمودن که این کلام خداست، تحتیل جاش هم تعییم می‌فرموندن که اینه به ذریع داخل صوره بقره یعن آیه مال کجاست، تام یه قسمت مطالبی رو ایشون از قول خدا بیان میفرمودن که این مطالب قرآن نبود، وحی نبود، ولی پیغمبر اکرم می‌فرموند که خداوند اینطور فرموندیه یکی چند کنتو کنزر ما اینا رو بهش میگن حدیث قدس ارز کنم که گرباد فتنه هر دو جهان را دو جهان یعنی دنیا و آخرت عارف یکی از حصلیتشم اینه که نه به دنیا کارده نه به آخرت اصلا بهشت و میگه زاهد و ورع و نماز و من و مستی و نیاز. تا خود او راز او رازی میان با که میشه. بشه بهش کار داره نه به جهنم کار داره نه به این دنیا کار داره نه به اون دنیا عشق میورزه به ذات حق و منظور اصلیش اونه که در اون ذات به اون ذات به وجود مطلق به پیونده. می‌گی چهار باد فتنه هر دو جهان را نه تنها این جهان اون جهانم به هم بزنه چراغ چشم ما راه انتظار دوست ما و چراغ چشم و راه انتظار دوست می‌بینید که فعل و اینا نداره مثل اینکه میگن دست من و دامن تو دست من و دامن تو یعنی من دامن تو رو گرفتم که کار من واسه انجام بگید یا حجی کهلال جواهری به من آر ای نسیم مثل کهل به عنوی سور و نیز به من یه چیزی کمیاب مثل اینکه راجبه الکول اینجا عرف زدن کلمه الکل نسیم مثل این کلاس نیست بل الکول در فرانسه اینجا با دو تا او و در انگلیسی که اصلا به کهلی میدیم سن این همه الکوهل عربیه اگر هم تو فرانسای اش نداره برنید فرانسای بیان مخلوق اه, اه نداره اه, اه رو میگن اه بنابراین الکوهول میگن تو در الکوهول الکوهول برای میکشن این الکوهله الکوهول اصلا برنی سرمه است با چیزای خیلی نایاب اول بار رازی محمد زکریای رازی از تختیر شراب ماده خیلی لطیفتر از شراب و لطیفتر از آب با بوی خاص و دردیوت که امونوز برای همه است به دست آورد سوزان و اسمش گذاشت الکوهل الکوهل کم کم شد اما ادما معتقد بودن که بعضی گوهرها هست که اگه در سرمه بریزن چش و تقویتیم. همچنان که بسیاری از فلزات قیمتی و اینا را همین عقیلیت داشتم کسان که هند و رفتن داوود بعد دیده باشند این ظرفای بسیار که میارن یه ورقه بسیار نازکی بسیار نازکی میگم یعنی مثلا ده تا از این ورقه ها به کلفتی یه دونه کاغستیگاه نیست اینقدر نازک از تلا یا از نقره خیلی تیکهی روی مثلا شل زرگ و فرینی یا چیزای سوئدیش خودشون به قول خودشون هست و اینا خب میخورن از اون درد میشه طلا اصلا وارد بدن نمیشه چیز نیست یا نقره هم. برای اینا معتقدن به خصوص معتقدن که این قبضه باه رو تقویت و نیروی جوان و مقبیه نمیم چیز و این آدادتان این کارم حالا که اینا شد یکی رو بگم برای اینکه که قسطه زرکوب رو میدونید که یکی از خلاف‌های مولانا که در دوره حیاتشم مرد، یعنی قرار جانشینی مولانا برسته ولی قبل از وفات مولانا خودش وفات کرد، چه شخص دونامه شیخ صلاحیدین فریدون زرکوبه. زرکوبی، آدم فکر کنه، خب یعنی زرگری. اینطور نیست، به یک. دوبامی که در احوال مولانا آماده هست که مولانا در بازار می‌ره صدای چکش زرکوبی شهر صلاویتین فریدون به گوشش رسید نمی‌دارم دیدید یا نه کسانی که چکش میزنن عهد چکش یعنی آهنگر، مسگر، دوادگر و امثال اینا چکش سنگ کنن با ریت می‌رزن این ریتم یه یعنی مقداری از خستگی اینا رو گیره. و خیلی بیشتر میتونن توانای کارتن داشته باشن تا اینکه نامان از زن بزنن اینه که معمولا ریتم داره چیز شون که بازار رفته باشین یا دوادگری زیده حتی آهنگری، پودکی که میزنن همه آهنگ داره. ریتم داره زرگری هم کارو چککشتن یه نداره که اصلا صدای چکش برسه اون گفتن مولانا، صدای ریتم چککش چهرس دست داد که موریدها دور چه دست به دست هم بدنید دایره دایره درست کنند وسط اون دایره در چرخ آمد کده مولان تو بازار همین چرخی که اینجا اغلب تو هم دیدین درویش‌های مولویه می‌چرخن من اون تحضیب که چرخ سازن و رستیدن یکی گنجی قدیده آمد داران دو کام زرکوبی کار رو مطلب ندارن زرکوبی که صدای چکش می‌دهدیم در میاد هنوز در هندو پاکستان اینا هست و اینم من از علمم نیست از تجربمه من تصادفاً این توفیق داشتم که این رو دیدم پرسیدم که این برقای بسیار بسیار نازکی که شما روی این غذاها میذارید این چجوری میسازن اینو گفتن که یه دکونایی هستن دکونای زرکوبی و یکی که کوچیک طلا رو مثلا این طلا رو می‌ذارن لایه چرم و این رو میکوبن بسیار میکوبن و بعد با ترتیباتی که دیگه من حالا جزیات رو من نرفتم که چیز بکنم این رو اینقدر میکوبن و اینقدر میزنن حالا به چه ترتیب که این به اون که میشه که دیدید و بعد به صورت مثلا دفتر صورت یه دفترچه های یه آلبوم هایی که برگ برگ مثل, مثل چیز کاخستگاه رو دیدید اونجوری میشه برگ برگ از اینا گرفت و میگیرن حالت کل مثلا، چون بیست تا پنجا تاش، مثلا، قیمت خیلی کمی داره، مثلا یک دهون گرم وضع خیلی, خیلی نازد، فوق کارز نده. کار اینه. و هیچ ربطی به زرگری اصلا نداره. پرض کنم که از جواهر ببینیم کجا رسیم. معتقد بودن که جواهر رو در سرمه که بریزن، بایه طبیت چشمه، حتی سوده بعضی جوالات رو که این بخورن مفره رقز رق شدیم در یک غزل علاج زعف دل ما بلد حوالت کن که آن مفره یاغوت در خزانه توست، مفرره یاغوت بود معجونی بوده و انواع اقسام شده فرهنگیز، مثل زعفرون رو میگن، فره خنده میره و شادی میره ظعفرون و بعض بنج مواد دیگه بوده بعد یاغوط سودم در این میریختنره که عقیده داشتن که یاغور هم فرح میاریم همینجور در سرمن مقداری فرمولای اینا رو هم اگه بخوای تو کتاب های مفللت طبی مثل ذخیره فارترشایی مثل توفه یکی معمن همساال اینا تمام جزیات فرمول این میده که چجوری کل و جواه چند تا نسه داره چجوری چهجوری این میده میگه و برای سوی چشم دیگه می میگه کهلال جواهری به من آره ای نسیم سو زان خاک وقت که شد ره دوست کهلال جواهر من چیه سوده ی بیاهوت و مرواری دینا نیست خاک پای دوست کهلال جواهری به من آره نسیم صبح زان خواهد که به که شد رنگزار دوست آخری دیگه چیز مشکلی نداره دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چه باید؟ من خدایی را کنمی هم شرب ساید بک که حال هست یا نه اون که حال اون سیله چرا؟ ولی ولی اولا توجه من که در اشتقاق و در صرف لغات حتی در مثلا فرض فرمایید که جمع مکسر که ساده تری جمع مکسر عبارت هست از جمع که یک ای کلمه ای مکسر واسینه مکسر واسینه نیشی شکست یه جور جمعه دارن که این جمع در عربی یه جور جمعه دارن که این جمع, جمع فارسی که ها رو درمیانیم یا آن در درمیانیم آخر بدون ایش تغییری میشه جمع درخت درختان کتاب کتاب ها عرب هم جمع جمع سالم داره یه جمع مذکر سالم داره که علامتش واو و نون و یه و نونه مسلمون و مسلمین بر حسب اینکه باءل باشه یا از این یه جمع مؤنث سالم هم داره که آت مسلمه مسلمات ساعت ساعت یه جمع دیگه داره میگن جمع مکسر یعنی شکسته این جمع مکسر خاصیتش اینه که شکل کلمه رو تبدیل حالا، گاهی این کلمه یه حرف بهش اضافه میشه. خبر میشه اخبار جمع میشه. گاهی یه حرف ازش کم میشه. سبیل جمع میشه صبر. رسول جمعش میشه رسول. یه حرف کم شد. گاهی نه حرفی کم میشه، نه زیاد میشه ولی حرکاتش فرق میکنه اسد، به معنی شیر جمعش شد، قص این جمع که اصلا سمایی یعنی شما باید بدونید که به همین داری قشن، هیچ وقت در زبان عربی و اکشار جمع بسته نشده، اکشار مال آخوند. اول مال تودهیه بوده، بعدم آخونده های بیسواد گرفتن جمع قش اشوره اگه بخواهید به عربی جمع ببندید، قشت، جمعیش اجور اگر هم در فارسی میخواد به کار بارید، بهتر است بگید قشت ها که از همه فسیح تره اخشار شاید یه دلیلم که عرب بکنم هم برای اینکه کراحت در سمع داره یعنی به گوش خوش نمی برها، مثلا جمع مکسر یا هر نقصیقه سازی دیگری که میشه حرکات ریشه در اونجا حفظ نمیشه یعنی قول ازش کهال می‌سازن وقتی که سیغه مبالغه بر وزن فعال مثل قسطا و بقال و چقال و پنجال و قنا و الی آخر اینا سیغه مبالغه است کهالم یعنی کسی که با قور خیلی سرکار داره یعنی چاش بزنه وا از هم قول بفهم اینیشو گفتن تا برگردونید ما به پیام نیستی که بیشتر خداست، البته شعر شایدی پیغان، جمال و جلال و نه همه به مطالب بعد باد فتنه، این حرفات تمامش بلی به هر حال قذر، ارخون میدیم ارز کنم که بخون آقای بستانی خواهد، بخون دو بگونه ای بگونه، دو, دو, دو پیک مشتاق آقای یه خورده چربش کردیم، میگه حرف زدن این رو <تصفيق> القوله سرتون میره برای اینکه ما قرار داشتیم که اینو بخونیم ماده ایکس چی بیشتر ولی خب نمیشه اونو بخونیم این نمیشه اینو بخونیم اون نمیشه دیگه بالاخره دو ساعت بیشتر وقت ندید منظور اینه که شما باز بشه قولن درقص که کفایت همه میگیرن. هر کس بلد من هاتو ای پی بده به عالم دوست تا جان اثر رقبت از سر رقبت فدای نام دوست از بات بات. نام دوست و است داریم همچه بل در دفست تو تیر تفهم سه شکر و با دوست دام از بخانش آن دام و من بر امید دانه افتادم در دانه گیرد شور مستی بر نگیرد سرز مستی بر نگیرد نزده من اینطوره و درست درم سرز مستی بر نگیرد, بر نگیرد. بله. سرز مستی بر نگیرد تا به صبح روز هشت که چون من در ازن یک جرز خورد از جار بود می‌گفتم شمعی از شهر شور خود ولی من نمی‌خوام نمودن در بیش از این اقرار کنم می بگفتم درسته با اینکه یه مختصری گفتم ولی بیشتر از این نمی‌خوام زحمت بدم نگفتم که از اون زحمت این زحمتین ایدی با می گفتم شمعی از شهر شور خود ولی من نمیخوام نمودن بیش از این ابرام درده هر دستم کشم در همچون توکیا خاکرامی کون مشرف کرده دست خاکرامی خاک کون پور... مشرف کرده اقدام اقدام جمع قدر من سوری و آرامی ندارد در دیگه نسخه خانداری است درمانی ندارد و چون که درمانی ندارد بله نسخه‌های نسخه های آرامی ندارد نسخه های دو چهار چش نسخه آرامی ندارد هست. ولی به هر حال اردوش یک معنیه این قزل هم ارفانیه که ازش بر میاد و شکر و بادامم میدونی که کنایه از لب و چشمه توی etapم از عشق شکر و بادام دوست لب و بعد زول زول و خال گفتم که چیزه چیز بسره جلال بنابراین دام راه میشه و آدم آزار زول فوق دام است و خالش دانه اندام و من بر امید دانه ای افتادم در دام دوست بعد اون چه حدس ما رو قوی میکنه به این که خیال نکنیم که این غزل غزل آشغانه است این بیت سرزمستی ور نگیرد تا و صبح روز هشت هر که چون من در ازل یک دور خورده از جام این اینم هست لابود اون راجب الستوبله های که مثل که گفتن پس اخذ عرب بکرد آیایی هست در قرآن که خلاصش این است که خداوند در روز ازل در روزگاری که تمام مخلوقات در عالم زر بودن این صورت زره ها در ازل، در این زمان گرفت از همه به همه گفت الستو برد بکن آیا من خدای شما نیستم قال و گفتند چه ما میگویند کسانی که کافر شدند اینا عهد الست رو فراموش کردن اون اهدی در ازل با خدا داشتن از یاد بردن و کسانی که خیلی مشغله به حقانا مشغولن وحد حق اونای کسانی هستن که این عهد الست به یادشه سعدی در باب عشق و شور در باب سوم مستان میگه خوشا وقت شوریدهگان نه خامش اگر ریش می نند و گرب مرهمش گدایانی از پادشاوی نفود به امیدشن در گدایی سبود دمادم شراب و علم برکشن و اگر تلخ می دم درکشند، نه تلخ از صبری که بر یاد بوست که تلخی شکر شد از دست دوست چه چه چه ملامتشانند مستان یا سبکتر برات اشتر مست با اصیدش نخواهد رهایی زبند شکاقش نجورید خلاف از کمن بعد توی اون که الست از, از ازل هم که به گوش به فریاد قادو بلا در فرد این الست و بالا که بارها آمده از همینجا هم خوندیم مثل این که قبلا بلی به حکم بلا بستند عهده الهست از که عرض کردیم قبل این، این الهستوالا اون مهدبه و اینجا میگه در جرعه در ازل جرعه از جام دوست خوردم اینه یک کلمه هم که چند بار البته گفتم اینه سرکراسای روزانه برای یک کلمه راجعه به ازل و بگم برای اینکه اولا توجه رو ذهن ما ذهنی نیست که بتونه بتونه تصور بیزمانی بی مکانی رو بکن، مثلا امکان مطلب مثلا کانت کفت میگه ما باید چیزها دو تا قید داشته باشم تا اصلا بتونیم تصور شده حالا هر چی باشیم میگه بو علیسینا میگه بود زمان کجا بود من کوره زمین کجاست بین مریخ و زهره از که از دو ما میتونیم تصبر کنیم میگه ذهن ما مغز ما تصبر چیزی که در زمان یا در مکان یا در هر دو نباشه اصلا نمیتونی بنابراین وقتی که بگیم که زمان در قدیم زمان بی نهایت قدیم یعنی هر چه قدیم فکر کنیم قدیمتر از او پیش از زمان این فقط لغلغه، لسانی، یه حرف نمیزنی، پیش از زمان برای ما قابل تصور اصلا همچنین بعد از زمان، زمان بینایت، بازم حرف. ولی به هر حال، این کلمات اصلا در عربی حتی تصبرش هم نبوده، عرب. بیابونگرده، بشخوره، بیسواد تصور اینکه زمان چقدر بود زمان از که تا که اون چجوره بود چقدر میتونه از این بر بیاد بیاده چه از اون میتونه کش بیاد سلسله عداد چقدر بود سر داره، نداره، تا داره، نداره اینا مطالعه بود که برای زهنهای پیش رفته چیز شده بنابراین این کلمات عزل و ابد که یه داریم یعنی بیاغاز یا عوض داریم، یعنی بی پایان و بی آغاز و بی پایان دوتای پا هم میشه سرمند سرمندین یعنی بی آغاز و بی پایان حالا گفتم اینه اولم خیال فقط برای که ذهن ما قابلیت تصبر چین چیزی رو نده به همین دلیل کانت میگه که آه شما راجع به چیزی که می فکر کنین اول ببینید که ذهنتون توانایی فکران راجع به این داره اصلا این تو مغز شما می گنجه یا نه؟ بعد میگه که فقط چیزهایی در ذهن آدم می که مقید به دو قید زمان و مکان باشد بنابراین تصبر خدا اگر می که نه در زمان بوده و نه در مکان و هم در زمان بوده و هم در مکان و خالق زمان و خالق مکانه و خودش بی مکانه و خودش بی زمانه اینو ذهن ما تصورشونم تونه اگه می‌خواید وجود خدا رو اثبات بکنید از طریق حکمت عملی خودشم تو کتاب، دو تا کتاب خیلی مهم داره، یکی نقادی عقل مطلقه کرتیک دو لغزون پیوغ یکی هم نقادی عقل عملی یعنی کرتیک دو لغزون پراتیک توی این دو کتاب، حدود دسترسی و حدود توانایی هر یکی از این دو جنبه فکر رو کرد و اونجاست که همین مسئله زمان و مکان میاد. به حال ازل یعنی بی آغاز، ابد یعنی بی انجام و سرمد یعنی بی آغاز و بی انجام هر دو و من حالا اینجا بحث فلسفی اصلا نمیخوام کنم. من داشم این لغت ها میخوام حرف بزنم. این لغت ها که ظاهرا عربی به نظر میاد و ازل جمع آزاد، آزار، ابد آباد، ازل و ابد اینا در حقیقت عربی نیست می‌دونه ولی هر دوتا این رو با ما یه عی نفی داریم در فارسی در پهلوی که این در فارسی نیامد ولی بعضی کلمات آمده امرداد که بخواهد میبرن یعنی نمردنی که چون این در فارسی نیامده به عقیده من بعد بگن مرداد که این ۃ ای نفی در فارسی نیامده. ولی درست به همین دارید که این ا به عنی نه تنها لغتی که درش آمده ایران و ان ایرانه. ایران که ایرانه ان ایران اینو جز ایران پس ۃ علامت نفیه در پهلاوی که در فارسی نیده گفتم در زبانهای باستانی لام وجود نداره جای شای لام ج رئیس در فارسی باستان در آژاستاینا ال لا نیست در سانسکریت هست سینوز ز هم به هم یاد میشه شما الان در خود انگلیسی این حرف اس و گاهی ز می گاهی سین می که نمونه بسیار ساده و این در فرانسه هم, هم در زبان های دیگه هم هست این نشون دیگه ای سینوز هم کاملا قابل طبقی بنابراین ازد میشه اد. سر یعنی بی اما سر. هم سر عبد بعد و پت پی و ببهم خیلی قابل چیزه پت شده موپت یعنی رئیس موها ته و به و ته و دال اینقدر به هم تبدیل میشه که بعد تر رو میگیم بعد چون خیلی اینا مخلیشون به هم دال و ته نزدیک بنابراین ابر هم هست اپت یعنی بیپا دوغت ازل و عبد هم که محفوشم است چون که عرض کردم به خیلی در دوره های بعد اصلا این مفاهم عنوان شده به همین یعنی مثلا ازل در قرآن کریم نیست نه, نه عبد نه عبد نه عبد هم مثل نیست شاید عبد باشه خالدی فیها ها عبده حالا من بی خودی قرآن خدا رو در اشتفالت نکنم برای باید دید ولی گمان نمی کنم که ازل در قرآن آمده ب خواب کنم که به نهایی در مورد این خواب که در آقای دستانی در خودم مشرف کرده از اقدام دوست چون خواب جماعیست اینجا ما نو خواب کان مشرف کودم کنم که حق باشمست نسخه دوی خوان و در نسخه های منبعش هم الان به تو میگم تا یک دونش کوز یک و دو و سه و چهار پنج و شیش و و و نه ده نسخه هست یکیش کوز نه دادیگهش کان بنابارین کان درسته اولا که آن دوم این که در قدیم این سبک وجود داشته که برای قیرزی رو هم زمیر او رو به کار ببرم و ارز کنم که من چهری دانگانی هزار سال گوش میگه فقان از این غراب بین و غراب بین کلا فقان از این به بین و واوی بود در نوا فکنده من نواوی بود غراب بین نیست جزدی همبری که مستجاب زود شد دعاوی بعد شوتو رو بیگه اله اله کجاست جمع بادهای من به سان ساهای عشق های اون بعد رسی بیاگون ببرنم این دروشناک بادیه که گم شود خرد در امتهای اون او رو جوان در قدیم بکن بردنه از اون رو ها نیست ولی هر جلوتر اومده هر پا مشخص شده که الان ها نگه اگه او برای غیر زیروع انها میکار برین دیگه قلطه و اگر مثل مرگو شعرها بخواهم به خودما اقتدار اختفاق کنیم که اوشون در جغد جنگش بکنیم همین فقانز جغد جنگ و مرگوهای او که تا عبد بریده با نای او بریده با نای او و تا عبد گسسته و شکسته پر و پاک زمان من بریده کرد آشنای من که از اون بریده با آشنای بود بخ بخ نعرض کنم که دوستم اگر دوست اینجا محبوب و معشوق یعنی هسته هست دوست پسند بخشی من چیزی ندارم شما چه جنبه ای میخوایی؟ لغت لغت رو من نمیدارم باید اعتیمولوجیش باید تو فرنگ پهلا بینم یکی از که رفقا حق قصد بکنن بارد از این است که زیاد به فرهنگ رو بیش از حد برای کلماتی که حتی در ابتدا آدم باورش نمیاد مثل نخ موان تجربه دارن در این مورد یه وقت یکی نخ نخ. نخ. نخ. نخ. نخ. نخ. نخ نخ یه رفقها تلفن کرد بیتی بود مال شاهنامه در داستان سیاوش سودابه ببخشید ولی خب این ادبیاتی بود فقط ببینید بیت بود در داستان سودابه و سیاوش که میدونید که سودابه تهمت زد که سیاوش به من نظر سود داره و قرار بود سیاوش آتش بکزد بعدن رفت از آتش گذشت به سلام خب وقتی از آتش گذشت سودابه کنف شد دیگه اینجا رو فردوسی وقتی میخواد شعر بده میگه چنان شد یعنی اون زن چنان شد که گویی تراز نخ است و یا پیش آتش ناهادی یخ است خب پیش آتش ناهادی یخ است یعنی گورا ولی تراز نخ تراز با تا نقش حاسته جامعه رو یعنی من که هم کلام این لباس که راه راه داره و نقشی داره اونا این میگن تراز جامعه و اگر مثلا نخهای ذرین داشته باشه میشه زرطراز تراز مثلا که حافظ میگه تراز پیرهن زرکش مبین چون شم که سوز هاست نهانی در ولی تراز نخ نخ یه ترازش کنی تلفون کرد روپه همان معلم بود ماسی درس بده اینم بود داستان سیاوش درس ماد سر کلاس در بیرستان که آقا تراز نخ یعنی چی؟ من اول اومدم به خود شعر روبر تعبیلش بودم گفتم که شاید نخ تراز بوده یعنی نخ نخش جامعه اینا بعد اون اضافه قلب شده بیزر و چه؟ داشتم این حقا رو بیادم دیدم، مثل یه جوانید دیدم بودم سب کن، سب کنی بای دیدم سیزده تا معنی واسه این نخ داریم صف سپاق چه و, صف سپا و چه و چه و چه و چه و چه و گلی و جامعه منقش را نیز گویم یعنی مثل نخ رو روی قالی چیز شد. شد چنان شد که گفتی تراز نخ است، و یا پیش آتش نها دیگه اگر کسی به من میگوش که آه این نخ و اگر من قبلا نهید بودم به یادم نمیمد این فکر به فکرم نمیرسید که بدم نخوام نگاه کنم اما بسیاری از کلمات هست ما فارسی زبونیم درسته ولی هیچ وقت جز سر کلاس ادب فارسی گفتن به من یه آغاز خوندن و یادمون نمیدن امکان نداره سعدی میگه شب ای و شم ای و گوینده ای و زیبای عوامان رادیو اون وقت نبوده چیکوینده داشته باشه. گوینده یعنی خانه. ساقی به نور باده بنفرو جاما که همجان جام گفتم بگو. یعنی आवाज بخون. برای اینکه اگه تو بگو ممکنه شنونده بگه که مگه خدا حافظ خداینا حاصل بوده که ما تر بگی. و خودش میگو ما بگو یعنی ما بخوان بخوام. شواهدش بیش از اون است که حالا بخوام اینجا خون. چیز داریم. یه دیگه هم داره گفته خواهد شد به دستان نیست هم دستستان میدونید که آهنگ عرض کنم که یارم ما چی دارد و جان نیستن این دارد و آن نیست هست ولی می‌فرماید که داستان در پرده میگویم ولی گفته خواهد شد به داستان نیست یعنی با آهنگ هم سروازار می خونم. اما این با آهنگ سروازار خوندن هم باز داستان و مفصلی داره که من وقتی شما نمیخوام بگیرم چون حافظ قراره بکنیم یه اصطلاح داریم الان در زبان عادی فارسی کسی که پشتری کشتی منور میره و بد میکنه و کلان میکنه و اینا بعد به گوش طرف که میرسه میگه باز مثلا صفحه رو داشتیم شنیدیم همتون. خب صفحه دیست که دیگه صفحه گره توش هم آهنگ دیگه آغاز و ساز صفحه گذاشتی یعنی بد روی کردی یعنی چیز. حالا در قدیم آره، در قدیم رست میدونم این که های کسی میاد میخواد میگه این آقای غفاری بد آدم یه فلانه فلانه، کسی بوشت را میگه بیرند اما مال بعد سرجام بناه شهر و آدم های چیز که با هم چط و نگیزه‌ای داشتن، گفتریه‌ای داشتن یا یعنی مثل خوانا که با هم یه تصنیف می‌ساختن متزمل بدبویی از اون طرف آهنگم می‌ذاشتن رو روشه چند تا سازن و زدگیر و بطره و اینا رو خبر می‌کردن اینا تمریح می‌کردن بعد می‌دن سر وازهایی و کمونچه، کمونچه شو می‌زاد اون این زدگیش می‌کرد یکی این چارپایی می‌داشت می‌گرد بالا شروع می‌کرد به خوندن تصنیف چیز میگه که عشق سعدی نه حدیثی که پنهان موند، داستانی که در هر سروازاری بازاری است. داستان سر بازار چی چیه؟ اینا میمدن و گاهی بعد چیز می‌شد. گاهی بعد طرف هم که نمی‌شه ساکت که اینا سر اینو چه بزنن، سرو چه بزنن، سرو چه بزنن، آب ببرن. اونم نموش شموادار میخواست اینا رو بزنن، زاد و قرض و بدبختی. تا این اواخ یعنی در روزگاری که در دستگاه زبط صفحه هیز، مصر بایز، تو نمی آمده بود خانه‌های جنوب که با هم بعد بودن یک, یک مختصری هم کرایه می‌رودن با کشتی خواننده و سازن و زدگیر می‌سادن هم می‌خوندن پوشه به اون یکی خان و آه آش باش یادش که بعد به هم فرتیبشو برید می‌خوندن می‌زدند، <تص> می‌زدن و زبط 618 677 500 صفحه رو می آوردن نظری پخش می‌کردن تو قاوغ راه تاماد باد سخن برافت می‌شد این گره افون بود هر چمیر این صدای این بلند و مشغول بوشدنی به خوان این صفحه گذاشتن این, این صفحه باز واسه ما صفحه گذاشتی این صفحه گذاشتن به معنی اون داستان زدن ور سر بازارو گفت که شد به داستان نیست هم داستان اشکستری به دستان با آواز سر بازار بخنن اینه طبل پنهان توت کتاب امیره تبل پنهان چه زنم تشت من از بامختار توس رسبایی ما بر سر بازار زدن خاملا دوشن ولی خب وقتی آدم اینها رو سابقش که بدونه شعری محکوم یه معنی دیگه و یه دیگه ای بگه خب اینجا دیگه چیزی که نه, نه دیگه توتیه به منیش سرمه من است میویدی که این مضمون گرد حد دستم کشم در دیده همچون توتیا خاک راهی کن مشرف کرده از اقدام دوست اینه مضمون بیت قبلیز کهل جواهری به من آره اینست اینه صبح زان خاک نیکفر که شد ره گذار خب آقای غفتاری بخون روی تو کس ندید دو هزارت رقید. خب اکثرش این اکثر شرای قابل ملاحظه حافظ یعنی ایرفان اصلا عمق روی تو کسب ندید و هزارت در خونجه ای هنوز آمدم به کوه تو چندان قریب نیست چون من در آن دیار هزاران در عشق خانقاه و خرابات, خرابات فرق نیست هر جا که هست هر تو روی حبیب هست. هر جا هست هر روی, هر روی, حبیب. روی حبیب هست. بله در عشق خانقا و فرد نیست هر جا که هست حتی روی حبیل هست آنجا که کار سومع را جلوه میدهند ناموس دیرست ناموس اینجا هست ناموس. یک نسخه از ده نسخه است و ده نسخه یک دو سرخ ناگوس، نوس قزمینین ناگوس راغب و, و, و, و, و, و بله. بله. بله. ناموس دیر راغب و نام سلیم مثلا ناگوس هم نمی‌تونه چیزی بده باشه ناموس دیر راغب و نام سلیم هست او شب که شد که یار به هاورش نظر نکرد ای حاج درد و اگر من طبیب فریاد حافظ این همه آخر به غزلی حبسی قریب و حدیثی عجیب حس من آرزو کنم که ظاهرم اربونی یک بیت اینجا داره که بسیار بیت قشنگی است و من میخونم تو نصا وقت قفل نبود لا اینکه اینجا بیت دوم میفرماد که هر چند دو برم از دو که دو راست و کسمباد اِتُ دوُپو هر چند دوُرم از تو که دوُر از تو ک لیکن امید وصل تو هم آن قریب آن سوا قریب با غافلی امید وصل تو هم آن هست این دوُر از تو ک آسموادو بهش میگن حَشِب هشت این لایه تو اوتوشالوار لای قبا های پنبه که میذاشتن یا توی لهاف لهاف روشگن محشوب بست این چیزی که داخلش هشت سعدی میگه قبا گر لطیف هست تو گر پرمیان به ناچار هشت بود درمیان تو گر پرمیانی نیابی مجوش کرم کار فرما و هشت بود ارز کنم که اصلا به این معنی و در اصطلاح ادب به معنی جمله است که در ضمن کلام بیاد و اگه برداریم یا بر نداریم هیچ خلالی در معنا حاصل نشد این که دور از تو کسمباد هشت این شعر در حقیقت هست هر دور دورم از تو لیکن امید و از تو هم است. هست این هشت رو میگم سجد یکی هشت به یکی هشت به متوسته یکی هم هشت به ملی هشت به اون از که اصلا کلام خراب کرده یارون یکی اگر دیر به خدمت آمادم جرم بپوش عذرم رمد چشم و صدا سر بود رمت خودش چش چشتر اصلا به هیچ درده دیگه این نمی‌کن رمض چشم رمض رسیده یعنی چشم درد صدا هم به منی سردرده باز به منی هیچ دردی دیگه پس رمض چشم صدا سر مثل سنگ سیاه هجار و لازفت میگه می‌گه به اون سنگ هجار و لازفتی که بوسیدم <تصح> من، اینه داشت می‌کنه هشت قبیه حضرم رمض چشم، مثالی که سال از درس معانی بیان برای بنده زدم هنوز یادم میاد آقای لطف صفاء خدا حفظشون کنه ان شاءالله ایشون معانی بیان برای ما کلاس پنجم علمی و این مثال برای حشو قبیح بود که ایشون فرمودن در به خدمت آدم درد بپوش عذرم رحمت چشم و صداه سر حشو متوسط اون است که چیزی به دوت کلام اضافه نکنه ولی زشت هم این که می‌شاوش زیاده ولی حافظ پشوایی داره که صد درصد به زیبایی کلام اضافه کرده هر چند دورم از تو که دور از تو کسبات یکن امید وستم انقریب است یه جای دیگه بهتر از این داره یه ساقی که جامات از لبه صاف تویی دبا چشم عنایتی به من که جامت از می صافی توی مباد ساقی چشم عنایتی به من که چشم به من دور نمونه هشت بسیار کلمه رقیب تا الان به کلی به معنی چش و همکار و کسی که در یک کاری با آدم مسابقه داره و حریف به کار میری این به این معنی نبود رقیب دقیقاً به معنی مراقب و نگهبان خود حافظ در یه جایی که صد در صد دیگه معنی میشه که داره یه قزم داره سوا تو نکت آن ظلف موش بو دار به یادگار بمانی که بوی او داره دل که گوهر اسرار عشق دوست در توان به دست تو دادم گرش نکودا نوای بلبلت گل بل بل کجا پسند افتد که گوش اوش به مرغان هر زگور داری چه چه بعد میگه در آن شمایل محبوب هیچ نشد بود. در چیزی گفتن یعنی ایراد کرد در آن شمائل در چیزی گفتن یعنی ایراد کرد در آن شمایل مطهور هیچ نقصی یعنی از اون پیکر و ریخت بسیار دلپذیر هیچ عیبی نمیشد جز اینقدر که رفیبان توند خود اینو 40 درجه بله رقیب اگر به معنی همچشم و همکار باشه یعنی یه محشوق دیگری یه, یه شاهد زیباروی دیگری بدخلاقان باشه این مربوط نیست جز اینکه مراقب بدخلاقی داشته باشه خوب است بود در سر میگه درم شمایل مطبوع هیچ نتبان گفت جز اینقدر که رقیبان تند خود داره اینجا کاملا پیداست که رقیب مراقب اینجا هم همینه، بیشتر بیشتر یعنی تقریبا همه جاها در حافظ یادتون باشیم سعدی هم همینطور یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب بازی چرخ از این یک دو کاری هست رقیب در گذر و بیش از این مکن نخوت که ساکنان در دوست خاکساران هست تو معنی مراقب، معنی نوکره واقع با هست که افاده میکشه به معنی ندیره این مال اما اصلش یک غزل داره سعدی که کمتر غزلی به این زیبایی، به این عمق تمام هم. همام غزل سعدی زیباست، در حد زیبایی است، ولی به این عمق کمتر داره، غزل حافظان است. و درست همین معنیست، چون اون خیلی واضح‌تره، منو برای تون می‌خونم. می‌فرماید که آستین و و یعنی آستین ها میگه می اینجا تا اینجاها رو می‌پشوند آستین بر روی نقشی در میان افکندهی خیشتن پنهان و شوری در جهان